نامه از بغداد به قیصریه پنجم ربیع الثانی 641 بسم الله الرحمن الرحیم برادر محترم سید برهان الدین نامتان را دریافت کردم و از اینکه دیدم مثل همیشه سالک راه حقیقت هستید و عمرتان را در این راه گذاشته اید خشنود خوشنود شدم. لاکن باید اعتراف کنم نامتان در عین حال دودلی دلی را نیز بر وجودم مستولی کرد. زیرا به محض اینکه خواندم در جستجوی رفیق جان برای مولوی هستید دانستم در پی چه کسی هستید اما ندانستم که از آن به بعد چه باید بکنم از ابتدا تعریف می کنم در خانقاهمان یک درویش قلمدریه بود نامش شمس تپریزی با تعریفی که در نامه نوشته بودی، مو به مو میخند. انسانی باهوش بود و در موضوعات گوناگون از ریاضیات گرفته تا الهیات، از فقه گرفته تا کیمیا داناتر از, از او نمیشناختم. اما گاه گیجمان من میکرد. از آنجا که میخواست همه بودهای را جز عشق الهی بشکند. گاه طوری رفتار میکرد گویی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد شمس اعتقاد داشت آخرین وظیفهش در این دنیا آشنا کردن شخصی منور با خورشید درونش و روشنایی بخشیدن به اوست کسی که در جستجویش بود نه مرشد بود نه مرید تنها خواسته اش از خدا رسیدن به همراز و رفیق جانش بود. روزی از او پرسیدم چرا نمیخواهد صدایش را انسانهای بیشتری بشنوند؟ در جواب گفت به این عالم نه برای آدمهای عادی بلکه برای انسانی خاص آمده است. خدا گفت کن و این دنیا موجود شد پس جوهره هستیمان کلمه است من هم برای یاری صراف سخنی آمده ام که کلمه‌ها را از دل حروف و حقیقت را از دل کلمه‌ها برخواهد کشید به محض دریافت نامه‌ی تان فهمیدم شخصی که مقدر است با مولوی ملاقات کند شمس تبریزی است با این همه باز برای اینکه به همه درویشان خانقا فرصت مساوی داده باشم همگی را در میدان گرد آوردم را شرح دادم چند نفر طلب این کار شدند. اما پس از شنیدن مسائب و دشواری ها صرف نظر کردم تنها کسی که ثابت قدم ماند شمس بود اینها زمستان سال گذشته اتفاق افتاد در بهار و پاییز نیز همگی را بار دیگر آسمودم همان منظره تکرار شد لابد میپرسید پرسید چرا اینقدر معطل کردی برای این پرسش تنها یک پاسخ دارم شمس را خیلی دوست داشتم نمیخواستم او را به سفری خطرناک بفرستم خطرناک چون که شمس چندان مبادی آداب نیست در یک کلام بگویم خیلی مقرور و صریح لحجه است در مدتی که آواره و سرگردان بوده این خصوصیتش مشکل ساز نمی‌شد اما میترسیدم در شهر و در میان آدمهای یکجانشین صاعقهٔ خصومتها را به طرف خود جلب کند. جاهلها درکش نمی کنند. با سوادها هم به او حسادت میورزند و وجودش را تحمل نمی‌کنند. از این رو کوشیدم سفرش را به تعویق بیندازم اما تا چه موقع شب قبل از سفر شمس با هم در اطراف درختهای توت قدم زدیم ابریشم نیز به عشق میماند هم حساس و لطیف است هم از آن چه فکرش را بکنی قویتر و مقاومتر است حتی آتشینتر به شمس گفتم ببین کرم ابریشم برای خروج از پیله ابریشمی را که با زحمت بسیار تنیده پاره میکنند از این رو کشاورز یا ابریشم را انتخاب میکند یا کرم ابریشم را هر دو را با هم نمیتوانند حفظ کنند اکثر مواقع برای حفظ ابریشم جان کرم ابریشم را میگیرند میدانی فقط برای یک دستمال ابریشمی صد کرم ابریشم جان میدهد؟ بادی آرام به سمت ما وزید لحظه‌ای لرزیدم پا به سن که بگذاری راحت سرما میخوری اما لرزیدنم از سردی هوا نبود زیرا آن لحظه بود که فهمیدم آخرین بار است شمس را در باخشه می بینم دیگر قرار نبود یک دیگر را ملاقات کنی دستکم در این دنیا او هم لاپت همان حس را داشت که غمی به ششمانش نشست هنگام سپید دم برای دستبوسی و حلالیت طلبیدن آمد دیدم موهای سیاه بلندش را تراشیده حیرت کردم. اما نه من علتش را پرسیدم نه او علتش را گفت. فقط یک چیز گفت. در این حکایت نقش من به نقش کرم ابریشم میماند. مولوی ابریشم است. گره در گره بافته خواهد شد. وقتش که برسد برای بقای ابریشم باید کرم ابریشم بمیرد. به این ترتیب به سوی قونیه حرکت کرد. خدا یاریش دهد. متفق کردن دو جان که در اتفاقشان خیر بیشمار است، ایمان دارم کار صحیحی بوده که انجام داده‌ایم. متفق کردن دو جان که در اتفاقشان خیر بی شماره است ایمان دارم کار صحیحی بوده که انجام داده ای. اما در دلم اندوه است از همکنون دلم برای سرکشترین خرابترین شاید هم دیوانه ترین درویشی که پا به خانقاه من گذاشته تنگ شده است در نهایت همگی امانت خدایی و بدون شک نزد او باز میگردی. و سلام و علیکم بابا زمان